سببت این جمله رو عرض بکنم حکام بهرین ادعا کردن که ایران در قضایه بهرین دخالت میکنه این دروغه نه ما دخالت نمی ما اونجایی که دخالت کنیم سریح میگیم ما در قضایه زدیت با اسرائیل دخالت کردیم نتیجه هم پیروزی جنگ سیاس روزه و پیروزی جنگ بیس روزه بود بعد از این هم هر جا بعد از این هم هر جا هر ملتی توجه توجه بعد از این هم هر جا هر ملتی هر گروهی با رژیم سحیونستی موارزه کنه مقابله کنه ما پشت سرشیم و کمکش میکنیم به هیچ اباییم از گفتن این حرف نداریم این حقیقت و واقعیته، اما اینکه حالا حاکم جزیره بهرین بیاد بگه ایران در قضاای بحرین دخالت میکنه نه این حرف درستی نیست، حرف خلاف واقعی است. ما اگر در بهرین دخالت میکردیم، اوضاع در بهرین جور دیگری میشد.